Amen. سلام به شما شنابندگان و همراهان گرامی برنامه گفتگیف هیپاپی خب این اولین قسمت از اولین فصل برنامه است و بذارید اول کار یک پیشتوزی از روال کاریمون برافید بدم و بعد بریم سراغ مهمان اولین قسمت برنامه دوستان این کار به صورت کاملا مستقل از چنل هیپاپ اینترویو منتشر میشه چنلی که خودمون ساختیم و هیچ رسانهی و لیبلی تو این کار شراکت نداره حالا ما شاید اسم لیبل و رسانه هایی رو تو مصاحبه بیاریم که این طبیعیه و اصلا مربوط نمیشه این کار به اونا و عدم اونای گرم که خودجوش کار رو شیر میکنن که بعدا ازشون تشکر میشه توی یک بین کار تنظیم صدا هامون رو عیرزا همکف عزیز تحت تشکل همکف انجام میشه و کار گرافیکی مونم که متروک آرت انجام میده برامون و خیلی هم هرفهی هستن تو کارشون و متشکرم ازشون که قبول کردن این کار برامون انجام بدن و یه توضیح دیگه که میخواستم بدم راجع به ایرادت قسمت اول برنامه بود تو قسمت اول ممکنه مشکلی توی رکورد کارا پیش بیاد توپقی زده بشه چون قسمت مصاحبه به صورت کاملا بداهه صورت میگیره و شاید بخش هایی که از روی متن میخونم موردی نداشته باشه اما اون قسمت داریم بداهه صحبت میکنیم یک لحظه میبینی رشته کلام از دست آدم در میره و امیدوارم که این مشکل رو به بزرگی خودتون ببخشین روال پخش برنامه اینطوریه که دوشنبه و جمعه یک قسمت از این برنامه بیرون میاد یعنی ما تو هفته آینده الان جمعه داریم این قسمت رو پخش میکنیم و هفته آینده دوشنبه یک قسمت دیگه از این برنامه پخش میشه برنامه‌ای که روز جمعه پخش میشه صرفا مصاحبه هست با اه... کسایی که توی هیپ میخونن یعنی تنظیم کننده ها آرتتیست ها تلنت ها کسایی که به هر نحوی با میکروفون و موزیک و گوش شما سر کار دارن اما توی قسمتی که دوشنبه پخش میشه بیشتر ما سی کنیم با امسی کارها گرفتی کارها مدیران رسانه و افرادی که به هر نحو دیگه با فرهنگ هیپاپی در ارتباطن مصاحبه صورت میگیره و به گوش شما عزیزان میرسه متاسفانه به دلیل اینکه خب اکثر کسایی که ما باشون مصاحبه میکنیم با دسترسی حضوری نداریم بهشون کارا به صورت تلفنی صورت میگیره اما سعی میکنیم تو تنظیم کارها کیفیت مناسبی رو به گوش شما برسونیم اما خب اگه باز هم توی نارسایی صدا مشکلی پیش بیاد این, هم این رو هم به بزرگی خودتون ببخشید و بذارید که ما کارمون رو پیش ببریم و دنبال کنید استقبال کنید حمایت کنید که کار خوب از آب در بیاد و شما دوست داشته باشید و ما هم خوشحال بشیم که داریم کار خوب انجام میدیم و خوشحال بشیم که داریم به سمت هدفمون می‌ریم. نظری انتقادی پیشنهادی هست به آیدی بال چنل مراجعه کنید و به سم و ما رو برسونید تا برنامه خودتون بهتر بشه خب دیگه خیلی بیشتر از این منتظرتون نمیذارم مهونه قسمت اول برنامه ما محمد امزد عزیز هست که یکی از آرتیست های تازه کار رپ فارس که تا حالا کارهای خوبی رو منتشر کرده همچنین آخرین آلبومش آلبوم زیر هشت هستش که ما بیشتر راجبه این آلبوم تو مصاحبه صحبت کردیم مصاحبه خوبی شده و امیدوارم که دوست داشته باشید سلام محمد جان خوبی داش سلام میکنم خوب وقت داری اگه اول کار میخوا سلام یا حرفی داشته باشی به عزیز ما در خدمتیم سلام هم درسته خب نیخوام اولی بیوگرافی نسبی از خودت بدی و بعد بریم سراغ سواله اصلی من مهمده دو ساله دارم کار میکنم دو ساله سال نیست تو با یه با موکاشو بگردیم ایپی پندره درست تو هم کاری شما درست. درسته خودت خوب بیشتر میدونیم ما این مسابقه رو تدارک دیدیم که راجب مجموعه جدید صحبت کنیم. دقیق میخوام می خوام بهمون بگی که فکر این مجموعه از کجا شکل گرفت و از کی شروع به کار کرد برای جمع کردنش می اولم بعد همینی که پاک شده تا بیا یه حسیش اومده بود و یعنی هم پرایفیت شاپ تو ریلی تو پاک شده monsieur داشتم که اول لیدر بشه تا این کمپانی سه تا پاک بشه اینا بعدم خود به محرم افتادی نیستم بایدو مداریم شما بایدو این چسته ترکه و تکیم تنها کار که دورو کارشون به کارشون نتونست شما سر مشکل <سؤال> مشکل راسلنگات فیت کو درست که گفتی انتقادای خوبم بهت شد و هم انتقادای نامناسب زیادی هم بهت شد بعد الان به نظر من ام بهترین جا همین جاست که به همون انتقاده جواب بدی و بگی که اصلا قضیه چی بود و کلن میگم یه جواب کلی به همه انتقاده بده که بعد بریم یکم بحثمون رو تخصیصی ترش کنیم در مورد آلبوم یکی چه چه همین پیتا بود نیست داره درست یکی چه دردی ها نمانم مختصفت که آرین و همین داست داره نفت درست چی بود چی بود اولیم ندارم تو خیلی فرق داشت حالا خاصه ترکی کات جالسان دیسلاب بود حالا هر کی دیسلاب میکنه همین اینو خیلی پیجا فرامینه خیلی پیجا فرامینه که فرق داشت با اون دیسلابایی که اونجوری که تو هم کار دیسلاب داره ولی نمیشه تو از که تو این از تو همین دیسلابه بوده. شکست هایی که تو میگیم که شده یا هشت رو بریم حالا یه سر آه. دیگه آره. یکم از تایت آره یک کم بلندتره که لطف کنی صحبت کنی چون اینجا نوع نویز زیاد داره آره. باید الان میخوایم بریم سراغ ترک ها من اسم ترک ها رو بهت میگم و اون چیزی که یعنی ببین نمیخوام راجبش اونجوری صحبت کنه که مثلا اون برداشت مخاطب رو تو همین مصاحبت بفهمه فقط میخوام اون که سر این ترک افتاد چه مودی بوده موقعی که نوشتیش آهنگسازی و هر توضیحی که میخوای راجبش بدی اولم شروع کنم از ترک کات اولین ترک آربونت تو تا وقتی بودیم و میزدیم بیرون حسرت دادی وقتی مشی خاطر که نیبره با الکل هیچ وقت کلی عشت گوشیم بود و کلی سفر تو مغزم هیچ کدو رو نکردم هر روز صبح بیدار می شدم با زنگای تو بیرون خرید و خند و لبخند ما میانه اومدی تو یه غریبم خاص بودی موقع رفتن کل رو پس دویدم من بموت تو الکلی چه فازت میگیره انطوری آره که کاس اولی چرا ذو شرم میاد علی و کاپ و تو دومین کال این کاپ خیلی من تو علی مخاطبان ویالو سلام خسته نباشید میگم خدمتون ما علی زده هستم نوازنده ویالو در مورد آلبوم زیر هشت از محمد جان محمد امز سوال شده بود والا به عنوان حالا من خب خیلی تخصصی نمیتونم نظر بدم چون کار من بیشتر پاپ و کلاسیک هست ولی خب در مورد هیپ و در مورد این آلبوم بعد بگم که این همکاری خیلی خوب و جالبی بود توی این آلبوم محمد جان خیلی هوشه خوبی دارن توی ها و توی بیتا و کالا بچه هایی که باشون همکاری کردن چه تو خانندگی چه توی تنظیم و میکروم هسته در کل آلبوم قشنگی باید باشه من فقط اون ترکی که خودم ساز زدم توش شنیدم تا الان ولی خب 100 در صد فضای خوبی ایجاد هم خواهد شد توی فضای هیپپپ کشورمون با این چیزای جدید که بوجود نه متشکر. بعد بیشتر روز توضیح بده راجبش چه مودی بودی که نوشتیش و دقیقا که جمع شد این ترک این ترک اون میرادکتیف چیز کرد ماهی صدویشو کردش و این که ده... تصمیم داشتم این ترکو با مقاید هم کنم ولی مقاید یه میمخواست کنم و تنهایی یه دیرای مجبور شدم تنهایی دیدم گونم و خودم خیلی دوستش دارم به ایسلاویی که به دلت میشید درست آخر جز یعنی تو آلبومت یکی دوتا ترک داشتیم که فکر نکنم دیسلاف بود یکیش همین آره. زیر هشت بود فکر میکنم یه ترک دیگه هم داشتیم دو آره دوتا دو آلبوم دیسلاف بود در تر... نبود دیسلاف بود آه بعد نگفتی قضیه خدافزین موکا چی بود چرا دیگه نمیخواست بخونه تو آلبوم دوراهی خیلی بهت کمک بود و فکرم هم تو همه ترکاش بود. اون روزی هاشمو خیلی کم آورده. فکر بود با تمامو میومد نظر میاد. علی خب یه کم مشکلات شخصی چه دیگه نخواسته الهه بدی اونرا بالا خودش ترک بعد تو ترک دوم آلبومت بود و این فیت بود برخلاف ترک کات تو بس قورسم حریفم نمیشه. این سوءاتو همینم همیشه خیالم هنوزم از سینه‌رفتی اصلاً این چه نورا هنوزم خندت میپیچه میبینی نه ما کو زخم ما اشری هنوزم تو با اوه محمود بود درست چه کاپونه خوبه کرج بعد کار دوم دهمش هم تفش شد من خیلی دوست دارم چه رو دیگه خیلی خوبه این باید با هم, کنیم. با هم, شد. با هم من باید و اینا که به بود خداله بخش بعد که زدن خوب شده ولی ترک ثومت کار حس سرد بود ای خیالش یادم نیستش چندون بود اواخره یه شهری وری بینم مردم بود هر شب سکوتو تجربه کردم خودم و تو خودم ترجمه کردم نتیجه که نه بایان فقط بگرد قشنگ یه سال پیش بود من این ترکم خواستم جمع کنم وزر تولدم بود بود که یش از یه روز سال پذیرفتنو، یش ازمان که یه من من تلیه بود. آره، من شهری آخرین نفری کار بود خیلی خیلی انتقاد بود. کرده بودن از ساره آره خیلی خیلی‌ها بودن که گفتن ولی قطاره خیلی یه ترکه شما چند وقت پیش گذاشتم تو کانال کاش این تفاوت حالا جدی ببشه که تو یه ترکه خوده خوب داره نمی‌شه بگین نا کنه آره کار انتقاد ترک شاوروم آلبومت بود و این هم بازم فیت بود سه تا ترک فیت پش سر هم یادمه میگفت که باورای غلخص نمیشه گفت که ماشاالله اون آدمه پردن فقط یکی تصمیم رو به موقع میگیره یکی ثانیه ها رو مش برو نمیشه معنی کات رنگ مد سر نمیشه به زبون و و برای جنگش از اینم مثل اون چیزی سینفهمیده بود چوسبیه عدالت عمر کو زج رو دنگو فنگش قادشی... آره از قدش بود آره گفتن از اون آزادی یاد داشته را که انتها هم با فلو که اونم یک جوانایی زیرهش برمیگشت و این اشتباهی اشتباه که من تو زندگی کردم و داشتیم می میگفتیم که مثلا همیشه تسرمان ریل نوت میگیدیم اشتباه چه خیلی جوانا میکنه و حاله پای کسایی میدیم که این وقت خودشون زندگی خوبی من رستن و بد رو انتخاب میکنیم و این بسیره جامعه که همه اشتباه میشه و به ایستی میخورن و بفیدون درک درسته. آای اه، سازی خیلی جالبی داشت این ترک. از سازه خوبی هم استفاده شده بود. راجب اینا توضیح بده برامون. بود. من درسته. میرسیم به ترک بیکلام آلبومت. ترک قفل. اینو توضیح بده راجب مفهومش چون خیلی سخت بود در کردن مفهوم این آهنگ یعنی سخت نبود ولی خب یکم گونگ بود شخصی کاراکتر سازی هایی. رایت رایت اینکه چنان داده بود که زیر 8 تا هایزلی بود بعد وقتی دراگ که زی داش زاد که اون یه چوبه که اون گفتم که اون رو توی فضا سازی بیارم توی فضا کار بیاره سعی بکنم گرام پیدا کردم دیگه چهره دارم استفاده کنه دیدم رو خیلی خوب گرفته به چیه قرعه قوظ فزاسازی ش جهت میشه فهمید دو تا چیز میشه فهمید چی میشه میشه صبح قبل از که مثلا قفی راکی چرخید اگه ذرات دیگه میشه این آزادی رو بعد اینکه دروازه میکنه فهمید سمت خودمون میگیم بنو ریتابی قرب درست تو تو ازش گره این که من از زیره میخواستم و فرزا سازش و لایت که میرسیم به ترک زیره هشت ترک اصلی آلبومت فیت بود فکر میکنم با وحید دگشت رو نکنم زیره تکبرم که دنیا رو بچشم از ابنی ساعت شنیه ای می میچکلی مامان موت شب رنگ داشت ولی خود مثل سنی مثل تصدیق قیسدامت ده من نه مثل بارو تو خوش بله شهر هر زهریه ولی مثل ترس دیگه نگران خط دستم نیست چه دمش پوشتم که رو بسم باز میکنن هی میگم خب دوست دوست اینو که اونورا که چم رگیت هم با وقتی که از تالنتایی جوات درآمد جوات امکانات چم واکسزی میکنه یعنی اگه شما تحصیلایی که واکسزی میکنه رو ببینید باورتون نمیشه اون یه امکانات کمن چین کاری میده باور چرا که تایید کرده بعد چرا که ديرعش خیلی مفتو چرا خورد چم خوندي چرا دو صدور خوندي چلتنا من هر که ميخواستم بزنم تو ديرعش منم تو, من تو فضا رو گفتم تو روييد خیلی خوب درك كرديشا بهتر از من این فضا رو بود م. در خصوصش هم روييد داشت در داشت خوب ميخند خوب داشت انت حاجی آره منم خودم از همون دست کسایی بودم که انتقاد کردم راجب همین ترک زیره 8 که چرا خود رو یک نبودی که خب همونجا جوابم هم خوب دادی همم هم که الان کامل‌تر کردی. ترک بعدی آلبومت ترک آخرین قطره است. جوی من ولی جو همه شده ردی جوی تلاشم میره سر مفر بعدی اگر خوبیه بعد کلی سختی وقتی ما زخمی این کشور، بوده بین من این کشور، اگر ما در این کشور، چه ما در این کشور، اگر ما در این کشور، اگر ما در این کشور، اگر ما در این کشور، بس ما در این کشور، اگر ما در این کشور، اگر ما در این کشور، اگر ما در این این کشور، اگر ما در این آدم ها فکر و خیال خلیص ت... بعدی ترک ها شده بود تمتا ترک خوب پوید یه بعد قرار شد که این ترک با یه دیگه بخوریم ولی نشد و دیگه قسمت شد که تو آدم ها دیگه اش فانسوسی این کار رو کنه با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و شنونده هاتون بنده هرفان صوفی هم که در سه ترک چه چخوف و آخرین قطره که ترک هفته آلبوم زیر هشته با محمد امزه کاری داشتیم از هم بزرگتون که محمد رو اگه اشتباه نکنم از سال نوت میشناسم جدایی از رپ و هاپ نقط قوتی که داره به نظرم واقعا اخلاق یه و خوبشه که من تاحالا ازش دروغ و درویی ندیدم توی رپم که در نظرم خیلی آینده داره امیدوارم هر جا هست موفق باشه همینجور با انرژی و پشت کار کارای خوب بده که صد در درصد اگه با همین مسیر پیش بره، خیلی خوب میشه محمد امزد محفظ بشیده داشت میان میبینم ات با اولین پر از ارفان بگو برامون فیلیم کنم که از دوستای خوبت باشه چجوری عاشنا شدین و ارفان صوفی؟ آره من هم بچهگی ارفانو میشتستم تو سیدیو هم با هم عاشنا شدین من دوست دو ساله شلوم کنم همیدی تو فضای چیز دیه یهو بلند شدم از لایو درم فیسبوک میرفتم، یه دوست یاد داشتم. بارش واقعا خوبه، یه هم یه وقت. من فردا الان مشهد، اتفاقا رفته بودم، دیدمش. کارش خوبه، من خیلی قبولش دارم. یا آلبومم داره جمع کنه که اون رو من خیلی تعبیه داد، ارزش یا آخر افتاده اون دومو دید ریمیکس تو یه هم رفیق ولی ازم دوریم دستم که روی دستم کوید اونقد بزرگ میزاره سن مال کشیدم صد بار نگاه تو رو که چشم من بره ارفوی <تصفيق> ترومه دنیای من شده شعاری همون هر سری که آین جوابی نداره مسئله می پیچه کلامی نداره تماس آخرم با خدا بود امیدی می ده که دنیا برامه سکون بگیر پس کامت بیست همیشه تنها ساکت نیست باوری می که تو خوابت نیست این می دهیم اینکسو می رو بگیزره شما زنی زد تو <تصفح> که آره مثلا اون شیرا دیدم میگم به اون چیزی که من دنبالش کردم چون می‌خواستم تریش آخر یه تریکی بزنم که امید بده که تریکی که خوشنایی اون نوره رو نشون بده دیدم این تریگ داره بفهمه هر کسی که اون قرباست و جایی این تو تو از اول بحثش هم که چیز باشه تکی باشه آره. اول که بعدو سه تا تریگ باشه این سه تا شاید اون تکی باشه ولی بعد دیگه ترشین خب راجب ترکا حسابی صحبت کردیم و بعد به نظرم دیگه باید بریم راجب مسئله پیرابونه آلبوم صحبت کنیم آلبومت زیر نظر یک کمپانی شد محمد کمپانی صدا فکر میکنه ببین الان فرهنگ کمپانی توی رپ و هیپاپ فارسی خیلی ضعیفه و اکثر کمپانیا ها نهایت کاری که میخواهم بکنن اینه که مثلا بیان خب... کار پخش یک تلنط رو به بگیرن یا مثلا نهایت چینه که یه پول نسبتا خوب که اصلا نمیشه بهش یه پول متوسطی بدن که این بند خدا بتونه حد همون از رکورد و میکس مسترینگ و اینای کارش رو ببنده اما این ولی ببین فرهنگ اصلی کمپانی اینه که تو رکوردها ها باید همراهی کنه نمیدونم تو خارج از کشور که کنسرت میذارن و کار فروش آلبوم انجام میدم. میخوام ببینم کمپانی صدا چی چیکار کرد برای این آلبوم تو و چه کمکی بهت کرد. من چیز از کمپانی‌ها یا هر آلبومی که با صورت فیزیکی انجام شده، آلبوم بود. کمپانی اون هفتادی بود. الان شده کمپانی کردی ما اون رو با هم راه موندت. خب این چه کسی حاضر نبود اون حمایت کنه یا سرمایه‌گذاری کنه. مهمت از ما نمائد که تنوزم تنوزه دوز ما میکنه حالا شاید مثلا اونجوری که شما معنی کردی کمپانی اونجری نشون تو ایران اصلا چیزی نداریم دیگه فرمیدینی که اصلا چیزی نداریم نهایت کاری که بکنن پخش باشدیه همینی کمپانی مو. اصلا پخش مارو نمائد که یکی دو بار آلو میگوش شد منطقه رو ساش بزرشن و... یه انتقادی به آلبومت شده بود گفتن که توی این آلبوم توی لیریکس کارها جملات تأثیر گذار خیلی کم بود ولی خب من خودم نشستم آلبومو چند بار گوش دادم توی ترک های دوم سومت و ترک زیر هشت اینا یا اون ترک میگفت طرف بلا نسبت همه داره ولی همه آدم بیشرف تیک های جالبی بود خودت نظر چیه راجع به این انتقاد و میخوام جوابشو بدید من گفتم تو چنل همم که کتاب نه نمیخوام کتاب فلسفه بنویسم و خودم هم فلسفه خونده هم دانشجوی فقولسانسم هم یک سنگی صحبت کنم خیلی اینای که الان درم سنگین میخونم بهتر میتونم صحبت کنم ولی <موید> خوب کاری که میخواستم دلی باشه میخاستم چیزی که تو دلهم خالي کنم نمیخواستم کلمه قلمبه سلمله بیارم یا نمیدونم اینجوری خودم راحتر بدم ارتباط بیشتری برقرار میکردم تا که بخوام حتا کار اونجوری دارم که مثلا سنگین باشل اینجا جاش نبود مثلا کار با امید غلر کار با کار دورا ب حامدسلشدرس اونا اصلاً این نمی‌خواستن اینجوری باشه که من بخوام کلمه سنگین استفاده کنم یا از تحلیل‌های پیچیده استفاده کنم. من این کاری که دل بود واسه من به دل خیلی هم میشه. ولی اگه مثلا توش ریا کنم چیزی که خودم نیستم واقعیتی که نیستم و یا میگم بگم شاید به دل خیلی هم نمیشه. آره. محمد زیر هشت یه کاور داشت و گفتن که کاورش حمایتی بوده و مثل که دقایق آخرام آماده شده بود. دقیقاً چیه؟ مفهوم این کاور چیه؟ حالا شاید یک واضح باشه ولی میخوام خودت هم برای توضیح بدی کابر رو من اول یه نفر دیگه دادم بود. درسته پولیو عزیز یا پی از دی وقت نداشت کابر رو من یعنی خودش یه باید به من بعد یه روز اونطاق شد که خودش هم گفلوت شد حالا من اگه خواستم اومد بعدا گفتش محمد کاوه تو من می‌ذارم باهات تا کنم علی بعدش خلوخ شد گفت نمی‌رسم اونم کاور بعد توی قماس گرت که گفت الان فرام خلعت شو اینو هم بزنم همین آخرم هم بود زد من زیاد کاور در جریانش نیستم ما هم سریالا کاور گره ثعلی چیزایی من چون اون پس نی خودت ایده برای طراحی نداری و خودت هم من من چون کارو پی اس سی رو به عهدم دارم که کی جایزه میگیره تو مسابقه خارجی و کار این عمو بزرگوارو میزنه من نمیام تو کارش دخالت کنم هر کی از हिस्से خودشه من نمیام تو کار تنظیم کننده دخالت کنم من نمیام تو کار دیزاینر رو طراح دخالت کنم خودش اینقدر بزرگ است که من بفهمم اصلا واسه چی آره درست میگی بازم هست که مسایلی بود پیرامون آلبومت که شاید من ازش خبر نداشته باشم میخوام دیگه توضیحات آخر راجبش بدی که یکم بعد راجب کاره قبلیت صحبت کنیم تا دیگه مصابه تمام بشه آدمه زیده هرش آدمه بود که هم از امانه حال شد امراضی بودم اگر انفرا امسای را در دینه پیجه دفت فاست, فاست یک پیگی بود با یعنی این نبود شد آلمان گیره اما دیگه می افتده و پر روز آمین پیام می داد محمد چی شد چی کردی نظر غیرات و این خیلی دلیر من می کنید که ای چی او پیگیر من نکرد چی کار خودم بیشتر دنبال کاره خب سلام امیدارم که حالا لحمتون خوب بشه نمیتونم حالا خیلی طولانی آنی صحبت کم در راته با آلمان محمد امزد آلبوم زیر 8 در واقع یه آلومیه که یه فضای خیلی مثلا دلتنگی و تنهایی و دیگه حس سرد بودن داره در اون آدم که انگار که هم فضا حس سرده از ترک اول که ترک اول ترک دوم دو تا ترک دیسلابه آلبوم تقریبا با یه سبک تلفیقی است. یعنی که نه ولی موضوعاش بهتره بگم تلفیقیه یعنی هم دیسلاو بود اه، هم اه، مثلا دلنوشته بود بعد مقداری هم اجتماعی بود اینطوریه. و از ترک آخر تقریبا اگه دقت کرده باشین هر ترک به ترک قبل مربوطه مثلا از ترک قفل که اسکیت هست شما میتونید گوش کنید که در واقع یه آدم قبل از اینکه بخواد بره زیره هشت یا تو همون ساعتهای قبل از اعدام یه حالت تقریبا ترس داره و یه جورایی که احساس میکنه لحظه های آخرش و داره با خودش ودا میکنه این توریه. بعد که میره آقا آنصلا ترک زیره بعدش میره ترک آخرین قطره و بعدش هم ترک باور ترک باور ترکیه که در واقع نشون میده محمد امزد اینجا خواسته اینجوری به نمایش بذاره که دیگه از این دنیا از اسارت این دنیا خودش رو نجات داده یا آدمی که دیگه پرواز کرده آزاد شده و احساس میکنه که از هر لحظه به خدا نزدیک تره و این باور رو در خودش ایجاد میکنه و یه ارتباط خیلی قوی با خدا ایجاد می قبل آلبوم یه ترک دادی دیس دیو بود قضیه شیه بهمندیس بهمندیس بهمندیس سر مشکلی که با نیما داشت نیما می که دوستای خوبه منه درسته خیلی حسیت هم تواشیه داره کار می کنه در حتی از این پیجشون می بود فانفارن پوش می گریگری و ارفان خیلی یکی ارفیوهای خوب برمانه. من تزین کارو نداشتم. ارفان دارم گفته شیاره اینجوریه دارم عذیت میکنم. فوش میدنم. بعد من اصلا شخصیت رو ناکنم. اصلا کار درستی درست نیستو کارو درستی نمیم کنم. دوستم ارفان هم با ات میخونم مشکلی نیست و همان کردیم. کارو بستیم. اصلا من خودم مشکل شخصی با این آدم ندارم. ولی چون اطرافیانم اطرافیان هم دوستان داشتن. چون با یکی از دوستای نزدیکشم تو آلبوم دوراهی فریاد افلاک باش همکاری کردی من من تعجب کردم که این کار چرا تو داخلش بودی اون سیکی که من با فریاد افلاک کدم بیشترش پویده رو بود پویده افلاک بود و دارم پیشنات که تو آلبوم فریادم باشه درسته و مکان مقام رابطه خوبی با فریاد داشت کریستوباس اینه ل علیان شامویی با بو اخیرا شو نظراتتون کارش هم موافق باشم درسته اللهو که باش کال میگم محمد اسم نیما رو آوردی نیما نیموش و من یه اون سالی که فراموش کردم یادم اومد چرا تو این آلبوم با نیما یا اشکان و های دیگه فیت ندادی اول کارم اول مصاحبه یکم راجبش بهش توضیح دادی ولی خب بازم میخوام تکمیل ترش کنی توضیح اول مصاحبه رو که همه داشته هم میگفتم مقال این وقت داره با فیت میاد بالا فیت داره جوری فولان این اصلا این دونن دستان من, من گفتن که بزر یک کار با یه سر کلینت هایی که اسمشون رو ایش که هست نشدیده بزنم بازیتونم یا میگن چون فیت داره مثلا کار این رفته یا نصلا همین بود میخواستم فقط خودم رو صحبت کنم که من با یه سری کلینت هم میتونم کار برم ح من یه خیلی چیزا از نیما نیوشات درستم خیلی چیزا از دانش با از اونی طرا. اینو کثاری بودن که واسه شدم من بیشتر دیگه شخصیتی چون داشتم همیشه مشاورته نیما بوده تو کارم. بعد ما چند وقت پیش حالا نمیدونم شاید خودت هم یادت باشه یکی از طرفدارات ازت پرسید که بزرگترین آرزویی که تو رب داری چیه و تو جواب دادی که دوست داری فیت بدی با رضا پیشرو. آره چرا؟ من از این رو شروع کنم خوب خوب. داشتم ترک رو می داشت. که می ارتباط می گرفتم. اصلا می تو اون خیلی کار با امیدنم با امیدنم. گفتم و پیش رو خیلی هم و پیش آره. کارهای قبلیت میخوام یکم راجعش صحبت کنیم. یک ترکه همکاری جهانی داشتی. راجب اون توضیح بده ریال رپ اینترکت با هاکت بوده هاکت دوره اندارگیجیو داشت بعد دیو نه دوره کراپت هم بودن هاکت من بهش پیام دادم اول هیچ مثلا قصه پیک و اینام نذاشتن چون یه کار ازش چیده بودم خیلی بدش می اومد رنگسه بود و رفتش پیهن دادم بودم زبانم به یکی از دوستان کمک ترستم رفتش دادم و به شده ایت گفتم گفتم توی ایران این جیری کار میکنی اقلی که بالاشتر شد گفتم دیگونه چرتوپره که ایران و گفتم نمه خوده توی ایران این جیریه و گفتم که دوستان باید کار کنم اونم مخالفتی نکرد شد که کارو ببندیم عزیزم بازم اینجا تو ایران نشیده دیگه بازم راجبه فعالیت های آیندت صحبت کن آلبومی پیش رو داری با که کار کنی نه توی آلبوم بقاب هست این کمپانی کشگیم دو تا ترک دارم تو بوده یکش هره که یکش همون ترک بلی که این فامیسونش هم دارید با آلبوم دوکاس و خویی هم با موکا و آرشش باید ترک خیلی وقتی هم شده الان ببین قضیه کمپانی ها حالا کمپانی که خودت داری باشون کار میکنی کمپانی هجوم یا فهم کنه همین کمپانی کشدم همین کمپانی که الان خودت باز گفتی. و کمپانی های دیگه که تو رپ فارسی مثل سیزده متفقین فاز رپ اینا الان خیلی مدتی که کامینسون دادن واسه آلبوم و نمیدونم چه بله سر این تلنت میاد که هزینه میدن. حالا اون کمپانی که کار میکنی شاید منظورم نباشه. شاید دنو عالبمه شون کم روالتر باشه. ولی خب میخوام نظرت رو بگی. چون خودت هم قبلاً بودی در جال تالنت بودی به اصلاح و تو جریان این ها هستی میخوام اگه دل مشکلی داری با این ها یا میخوای انتقادی داری ازشون الان اینجا به اون بگی. و یا نظرت رو بگی راجب همین عالبمایی که اصلاً وادوایید میدن بعد نمیاد تالنت میاد. هزینه میکنه. و هیچ اتفاقی هم نمی افته میخوام رجم این صحبت کنیم من اول شب بیرون جریان رو میدیدم مثلا من همین نظر داشتم که تقصیل کمپانی ها چرا رو تره کنه میدن شد رو این شد خب که کمپانی ها گفتیم کمپانی درست نداری چون نوپا تازه دارن هنوز کجا دارن که درستشن یلا آستری دیر و می دیگه میفته مشکل مالی میخورن خب آره یعنی دیگه بهشون حقو کردن مثلا ترکس ما چهار مؤلف شیدا مثلا چهار تا کمپانی دیگه اذیت میکنه بعد تو یاد میام که حنا بزرگ باشن و حق بهشون ما محمد جان ما یه چالش رو میخوام تو برنامه مطرح کنیم اینجا تا گزینه داریم جلو خودمونه و بعد میخوایم ازت که یک عدد از یک تا سه انتخاب کنی و بعد یکیشو رو برامون انجام بدی یک چالش در میاد و خودت میتونی انتخاب کنی اونو انجام بدی نه داریم اوکی میتونی کار کنی؟ بلدی فیریستایل؟ نه خیلی خوب پس چالش شما میشه که یه فیرسال برنامه بگیری و بعد برنامه ارسال کنی که ما آخر برنامه اونو پخش کنیم به عنوان حرف آخرت اگه انتقادی پیشنهادی نظری برای بهتر شدن برنامه ما داری ما خیلی دوست داریم که بشنویم و بهمون بگی انتقاد و پیشنهادی نه برنامه خوبی رویده که پیشرفت کنه روز برود برایتون پیشرفت کنه و به جای بالتر خیلی ممنونم که قبول کردید به عنوان اولین مهمان برنامه با ما همکاری کنید. ممنون بود. خواهش می‌کنم هر کمکی بتونم انجام میدم واسه دیفا و ایام میام تریشوا اگه بتونم داره ذره بهتر سر حیچه‌ای که مخاطبش پیدا کنه. من فکر می‌کنم شاید به خاطر اهدافی که توی میگیم دارم دیگه اصلا نمی‌تونم امیدوارم بدونم که و هر کسی امید تو را من هر دستی داردش برسید و خدافزی میکنم دست شما برده ایشالا که بتونی ادامه بدی و مشکلاتت حل بشه خیلی ممنونم بازم خدافز شما برنامه خیلی متشکرم از شما عزیزان که تاینت های برنامه ما رو دنبال کردید و همچنین تشکر ویژه میکنم از اون عزیزانی که کار رو به صورت خودجوش تو سایت هاشون منتشر کردن و تو چنل هاشون قرار دادن و همچنین تشکر ویژه میکنم از مهمانان این مصاحبه که نظرشون به مجموعه زیر هشت به ما گفتند و ما داخل مصاحبه قرار دادیم خب به پایان قسمت اول از برنامه رسیدیم همینطوری که خودتون گوش کردید محمد خیلی خوب راجع به برنامه صحبت کرد و خیلی خوب به انتقادهایی که به آلبوم آخرش شد پاسخ داد و خیلی محترمانه و معدبانه پذیرفت که تو مصاحبه ما شرکت کنه و ما خیلی ممنونیم ازش متشکرم که گوش کردید قسمت اول رو و اگر نظری انتقادی هست راجب این قسمت از طریق آیدی که تو بیگرافی چنل قرار داده شده به ما برسونید و کاری کنید که این برنامه بهتر از قبل بشه همچنین اگه کسی رو سراغ دارید که به نظر خودتون به درد مصاحبه با ما میخورن و نیازه که حتما باشون مصاحبه بشه دستاوردهای های جدید رو دارن اون رو هم از طریق همون آیدی به ما اطلاع بدید بازم خیلی متشکرم از شما که وقت گذاشتید و به حرف ما گوش کردید به مصاحبه ما گوش کردید و خیلی متشکرم از اونایی که با حمایت کردن از کار و اون عزیزانی که به عنوان مهمان در این مصاحبه حضور داشتن تا برنامه بدیع به درازشونه خط فکری انتقادی وقتی زیرهشتید علامت سوال با کل شک و تردید وقتی کل شعر و رفتی بدین همیشه دونو بالا رد پای آدم رفتم که هیچ وقت نبودن توی ایدالیه جازتم رفتم منم جار زدم احمق بمون اینجا تنها شرایط ایدال آدم هاست میشه حد زد آدم ها رو با نقاب تا خط پایان که نمیرسه هیچ وقت به مقصد تیر به قلبم که نوار مقزم یه خط صافه تقاده انقاده بطه تولد و انجماد قلبم